داستان سه زن سه تا خواهر بودن، هر سه تا هم جوون یکی 67 ساله، اون یکی 75 ساله و 94 ساله این دخترها یه خونهی داشتن با یه ایوون کوچیک و قشنگ که وسط این ایوون پنجرهای بود واسه دیدن مردمی که از کوچه رد میشن دختر 94 ساله جوون زیبایی رو دید که داره از تو کوچه رد میشه. فوری رفت و زریفترین و خوشبوترین دستمالشو برداشت و وقتی که اون جوون زیر ایوون رسید براش پایین انداخت. جوون دستمال و برداشت و اونو بو کرد. با خودش فکر کرد این دستمال خوشبو باید مال دختر خیلی قشنگی باشه. چند قدم رفت ولی بعد دوباره برگشت عقب و زنگ در خونه رو زد. یکی از سه تا در و براش باز کردن جوون پرسید میبخشین تو این خونه شما دختر دارین یکی از خواهرها جواب داد بله آقا چه جورم یکی که چرس کنم یه لطفی در حقم بکنید من میخوام دختری رو که این دستمالو گم کرده ببینم خواهرها جواب دادن نه میدونید آخه خوبیت نداره. تو این خونه رسمه که تا دختر عروسی نکنه نمیتونید ببینیدش. جوون که خیال برش داشته بود که دخترش دستگلیه گفت مهم نیست. بسیار خوب. حتی ندیده باهاش عروسی میکنم. حالا میرم پیش مادرم تا بهش بگم که دختر جوون خیلی قشنگی پیدا کردم و میخوام بگیرمش. رفت خونه و سیر تا پیاز قضیه رو برای مادرش تعریف کرد. مادر بهش گفت پسر جون موازب باش کلکی تو کار نباشه. قبل از هر کاری باید خوب در موردش فکر کنی. و پسرش جواب داد مهم نیست خیلی خوب. حرف پادشاه یکیه. چون جوان پادشاه بود. روز بعد دوباره برگشت در خونه عروس و زنگ زد. یکی از خواهرها دوباره در رو براش باز کرد و جوون ازش پرسید میبخشین شما مادر بزرگشین؟ و دختر جواب داد بله من مادر بزرگشم چون مادر بزرگشین یه لطفی در حقم بکنید لاقل یه انگشت این دختر رو من نشون بدید مادر بزرگ گفت حالا نه باشه برای فردا جوون هم حافظی کرد و گذاشت و رفت تا رفت بیرون پیردخترای انگشت مصنوعی و یه ناخون مصنوعی درست کردن از اون طرف جوون به شوق دیدار این انگشت شب اصلا خوابش نبرد صبح که شد لباس پوشید و یکسره به سمت خونه دختر بهراه افتاد وقتی در و براش باز کردن جوون به پیرزن گفت من اومدم اینجا اومدم تا انگشت عروسمو ببینم پیرزنم گفت بله بله همین حالا اونو از این سوراخ در بهتون نشون میدم و عروس انگشت قلابی خودش رو از لای سوراخ در به جوون نشون داد جوون دید که عجب انگشت قشنگیه. انگشت عروس خودش رو بوسید و یه انگشتر الماس بهش هدیه کرد بعد هم عاشق و شوریده به پیرزنه گفت میدونید ما در بزرگ؟ من میخوام هرچی زودتر عروسی کنم. دیگه طاقتم تاق شده. و پیرزنم جواب داد. اگه میخوای باشه باید بمونه برای فردا. جوانم جواب داد. بسیار خوب. پس من فردا عروسی میکنم. این قول پادشاهه. چون ما پولدار بودن. هر روزی که درشون میخواست میتونستم بسات عروسی رو علم کنم. هیچ کم و هم نداشتن. فرداش؟ عروس به کمک دوتا خواهرش خودشو آماده کرد. پادشاه از راه رسید و گفت در بزرگمن من ما در بزرگم گفت یه لحظه صبر کنید. همین حالا میاریمش. و دوتا خواهر که زیر بقل عروس رو گرفته بودن اومدند و عروس رو هم با هفت تور پوشونده بودن. دوتا خواهر به داماد گفتند: خوب یادتون باشه. کتاب های هجده شما نمیتونید ایشون رو ببینید. رفتن کلیسا و عخت کردن. اون وقت پادشاه خواست که بره نهار بخوره. اما دخترها اجازه ندادن. و گفتن میدونید عروس به این چیزا عادت نداره. و پادشاه هم مجبور بود ساکت باشه و بیتاب رسیدن شب. و تنها شدن با عروس اما پیرزنام عروس رو بردن تا توی اتاق و حتی نذاشتن داماد بره تو تا که اونا لباس عروس رو در بیارن و بزارنش توی تختش. بالاخر جوون همراه دوتا پیرزن رفت تو عروس هم که رو تختش خواب بود. داماد لباسش رو در برد و پیرزنام رفتن چراغ رو هم با خودشون بردن اما داماد تو جیبش یه شمع با خودش آورده بود روشنش کرد ببینه با چه کسی روبرو میشه و بعد از اینکه شم رو روشن کرد با یه پیرزن در ا داغون مواجه شد خشکش زد صداش از ترس در نمیومد بعد همچین از کوره در رفت که عروس از هرسش از پنجره بیرون انداخت پشت پنجره اتاق پادشاه پر از دار و درخت بود عروس بیچاره روی یکی از های بین درختها افتاد لباس خوابش هم گیر کرد به یکی از شاخه‌ها و بین زمین و هوا معلق موند اون شب سه تا پری توی باغ گردش می‌کردند از زیر آلاچیق رد میشدن ناگهان چشمشون به پیرزنه افتاد که بین زمین و هوا معلق بود با دیدن اون منظره عجیب و غریب هر ستا پری قشت قشت دادن زیر خنده و انقدر خندیده بودن که پهلوهاشون درد گرفته بود. وقتی حسابی خندیدن یکیشون گفت حالا که پشت سر این پیرزن بیچاره انقدر خندیدیم باید یه طور تلافی کنیم. یکی از پریا گفت معلومه که تلافی میکنیم. دستور میدم که تو قشنگترین دختر جوونی بشی که میشه با دوتا چشم ببینیمش. پری دوم گفت: دستور میدم که تو شوهر خیلی قشنگی داشته باشی که عاشقت باشه و دوست داشته باشه. و پری سوم گفت: منم دستور میدم که همه ی عمر خانوم خانوما باشی. و هر سه پری گذاشتن و رفتن. دیگه صبح شده بود. پادشاه از خواب بلند شد. یاد جریان دیشب افتاد. برای اینکه مطمئن بشه این قضیه کابوس نبوده، پنجره رو باز کرد تا اون حیولایی که دیشب پرتش کرده بود بیرون رو پیدا کنه. وقتی پنجره رو باز کرد، با سحنه عجیبی مواجه شد. روی آلاچیق، دختر جوون خیلی قشنگی رو دید که آه از نهادش بلند شد. با خودش گفت خاک بر سرم چه کاری کردم مونده بود چجوری اون بیچاره رو از روی آلاچیق نجات بده خلاصه به کمک یکی از ملافههای تخت عروس خودش رو بالا کشید و توی اتاق آورد وقتی تونست عروسش رو نجات بده خوشحال و خندون ولی البته حسابیم پشیمون شروع کرد به عذرخواهی کردن عروسم بخشیدش کمی بعد صدای در اومد پادشاه گفت مادر بفرمایید تو مادر بزرگ پیرزن اومد تو روی رخت خواب به جای خواهر 94 سالش اون دختر جوون و زیبا رو دید عروس خوشگل هم انگار نه انگار که اتفاقی افتاده بهش گفت که برام قهوه بیار پیر زنه دستش از تعجب گذاشت روی دهنش که جیغ نکشه و بروی خودش نیاره و رفت براش قهوه بیاره اما تا پادشاه رفت دنبال کاراش دوید پیش عروس رو ازش پرسید آخه چجوری چجوری اینقدر جوون شدی؟ عروس هم گفت ساکت تو رو خدا ساکت اگه بدونی چی کار کردم؟ خودمو دادم رنده کردم پیرزنه گفت رنده کردی؟ بگو ببینم پیش کی؟ منم میخوام بدم خودم رنده کنن عروس جواب داد خب پیش نجار پیرزنه دوید پیش نجار رو بهش گفت باید صورت منم رنده کنی نجار گفت ای وای شما که عینه یه چوب خشک میمونین اگه رنده تون کنم که میرید اون دنیا؟ و پیرزنه گفت شما نگران نباشین نجارم بهش جواب داد وقتی کشتمتون بهتون چجوری نگران نباشم؟ گفتم که شما نگران نباشیم بهتون پول خوبی میدم. خلاصه نجار وقتی اسم پول خوبو شنید نظرش عوض شد. رنده رو برداشت و گفت لطفا روی میز دراز بکشیم. و شروع کرد به کردن گونه و چونه پیرزن. پیرزن فریاد میکشید نجارم می اگه فریاد بکشین که نمیشه کاری کرد؟ پیرزن برگشت طرف دیگه و نجار اون طرف گونه و چونش هم رنده کرد. پیرزن دیگه فریاد نمیکشید چون مرده بود. اما معلوم نشد سر پیر سوم چه بلایی اومد. تو آب غرق شد؟ سرش بریده شد؟ تو رخت خواب مرد یا که کجا؟ هیچ کسی ازش خبر نداره. و عروس خانم با پادشاه جوان تو خونه خودش تنها شد. و همیشه همیشه خوش و با همدیگه زندگی کردن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 ماجراجویی در سرزمین های زیر دریا در سرزمین. در سرزمین. در سرزمین. همه اینها و بیش از اینها, بیش از اینها در کانال تلگرامی هزار افسان افثان. داستان های صوتی،